مصنوی معنوی مولوی برنامه نوود و سوام بیان آن که حصول علم و مال و جاه بدگوهران را فضیحت اوست است و چون شمشیر است که افتاده است، بدست دست راه زن بدگوهر را علم و فن آموختن دادن تیغ است دست راه زن تیغ دادن در کف زنگی مست به که آید علم ناکس را بده است علم و مال و منصب و جاه و قران فتنه آمد در کف بدگوهران. پس غذا زین فرض شد بر مؤمنان تا ستانند از کف مجنون سنان. جان او مجنون تنش شمشیر او واسطان شمشیر را زانزشت خوب. آنچه منصب می کند با جاهلان از فظیحت کی کند صد ارسلان عیب او مخفی است چون آلت بیافت مارش از سوراخ بر صحرا شتافت جمله صحرا مار و گژدم پر شود چونکه جاهل شاه حکم مر شود. مال و منصب ناکس کارد بده است، طالب رسوایی خیش او شده است. یا کند بخل و عطاها کم دهد، یا سخا آرد و ناموضع نهد. شاه را در خانه بیزق نهد، اینچنین باشد، آتا که مق دهد حاکم چون در دست گمراه فتاد جا پندارید در چاه فتاد ره نمیداند قلاووزی کند جان زشت او جهانسوزی کند طفل راه فقر چون پیری گرفت پیروان را غول ادبیری گرفت که بیا تا ماه بنمایم نمایم تو را ماه را هرگز ندید آن بی سفا چون نمایی چون ندیدستی به عمر عکس مه در آب هم ای خام غمر احمقان سرور شدستند است زبیم آقلان سرها کشیده در گلیم تفسیر یا ایوهال مزمل خاند مزمل نبی را زین سبب که برون آی از گلیم ای حرب سرمکش اندر گلیم و رو ما که جهان جسم است سرگردان تو ہوش هین مشو پنهان زننگ مدعی که تو داری شمع وحی شعشعی. هین قم لیله که شمعی ای همام شم اندر شب بود اندر قیام. بی فروغات روز روشن هم شباست بی پناهت شیر اسیر ارنب است باش کشتیبان در این بحر صفا که تو نوه سانی ای مستفا رهشناس می بباید با باب هر رهی را خاصا در راه آب. خیز بنگر کاربان ره زده. هر طرف غول است کشتیبان شده. خزر وقتی غوث هر کشتی تویی. همچو روح الله مکن تنها روی. پیش این جمعی چو شمع آسمان، انقطاع و خلوتاری را بمان. وقت خلوت نیست، اندر جمع آی، ای هدا چون کوه قاف و تو همای. بعد بر صدر فلک شد شبروان، سیر را نگذارد از بانگ سگان تا اینان همچون سگان بر بدر تو بانگ می دارند سوی صدر تو این سگان کرند زمر انستو از سفح وعوعکنان بر بدر تو هین به مگزار ای شفا رنجور را توز خشم کر آسای کور را نه تو گفتی قاید اما براه سد ثواب و عجر یابد از اله هر که او چل گام را کشد گشت آمرزیده و یابد رشد پس بکش تو توزین جهان بیقرار جوق کوران را قطار اندر قطار کار حادی این بود تو هادی ماتم آخر زمان را شادی هین روان کن ای امام المتقین این خیال اندیشگان را تا یقین هر که در مکر تو دارد دل گرو گردنش را من زنم تو شاد را و بر سر کوریش کوریهان هم او شکر پندارد و زهرشده هم عقل ها از نور من افروختند مکرها ها از مکر من آموختند چیست خود آلا چقه آن ترکمان پیش پای نرپیلان جهان آن چراغ او با پیش سرسرم خود چه باشد ای این پیغمبرم خیز در دم تو بسور سهم ناک، تا هزاران مرده بر رویت از چون تو اسرافیل وقتی راست خیز راست خیز ساز پیش از راست خیز هر که گوید کو قیامت ای سنم خیش بنما که قیامت نک منم در نگار ای سایل مهنت زده زین قیامت صد جهان افزون شده ورنباشد نباشد اهل این ذکر و قنود پس جواب ال احمق ای سلطان سکوت زاسمان حق سکوت آید جواب چون بود جانا دعا نامستجاب ای دریغا وقت خرمنگاه شد لیک روز از بخت ما بیگاه شد وقت تنگ است و فراخی این کلام تنگ می آید برو عمر دوام نیزبازی اندر این کوههای تنگ نیزبازان را همه آرد بننگ وقت تنگ و خاطر و فهم عوام تنگ تر ره ز وقت است ای غلام، چون جواب احمق آمد خاموشی، این درازی در سخن چون میکشی، از کمال رحمت و موج کرم می دهد هر شوره را باران و نم در بیان آن که ترکل جواب جوابون، مقرر این سخن که جواب ال احمق سکوتون، شرح این هر دو در این قصه است که گفته می آید. بود شاه بود او را بنده ای، مرد عقل بود و شهوت زنده ای. خرده خدمتش بگذاشتی بد سگالیدی نکو پنداشتی گفت شاهنشه جراعش کم کنید ور بجنگد نامش از خط برزنید عقل او کم بود و حرس او فزون چون جرا کم دید شد و هرون عقل بودی گرد خود کردی تواف تا بدیدی جرم خود گشتی معاف چون خر پا بسته تندد از خری هر دو پایش بسته گردد برسری پس بگوید خر که یک بندم بس است مدن کاندو ز فعل آنخس است. در تفسیر این حدیث مصطفی علیه السلام که ان الله تعالی خلق الملائکته و رکب فیهم الاقل بخلق و خلق فيهم و رکب فیهم الشهوت و خلق بني آدم و رکب فیهم الاقل و فمن غلب اقله شهوته فهو اعلا من الملائکته ومن غلب شهوته اقله فهو ادنى من البهائم در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سگونه گونه آفرید یک گروه را جمله عقل و علم و جود آن فرشته است او نداند جز سجود نیست اندر عنصرش حرس و هوا نور مطلق زنده از عشق خدا یک گروه دیگر از دانش تهی، همچو حیوان از آلف در فربهی. او نبیند جز که استبل و آلف از شقاوت غافل است و از شرف. این سوم هست آدمی زاد و بشر، نیم او فرشته و نیمش خر. نیم خر خود مایل سفلی بود، نیم دیگر مایل عقلی بود. آن دو قوم آسوده از جنگ و هراب، وین بشر دو خالف در عذاب. وین بشر هم زمتهان قسمت شدند، آدمی شکلند و سه امت شدند، یک گروه مستغرق مطلق شدند همچو عیسی با ملک ملحق شدند. نقش آدم لیک معنی جبرئیل، رسته از خشم و هواب و قال و قیل. از ریاضت رسته و زهد و جهاد، گوییها از آدمی او خود نزاد. قسم دیگر باخران ملحق شدند خشم محض و شهوت مطلق شدند وصف جبریلی در ایشان بود رفت تنگ بود آن خانه و آن وصف زفت مرده گردد شخص که شود خر شود چون جان او بی آن شود زان که جان کن ندارد هست پست این سخن حق استو و صوفی گفته است عوض حیوان ها فوزون تر جان کند در جهان باریک کاری ها کند مکرو تلبیسه که او داند تنید، آن زهیوان دگر ناید پدید جامه های زرکش را بافتن، دورها از قر دریا یافتن خردکاری‌های علم هندسه، یا نجوم و علم طب و فلسفه که تعلق با همین دنیاستش استش ره به هفتم آسمان بر نیستش این همه علم بنای آخر است که اماد بود گاو و اشتر است بحر استبقای حیوان چند روز نام آن کردند این گیجان رموز علم راه حق و علم منزلش صاحب دل داندان را با دلش پس در این ترکیب حیوان لطیف آفرید و کرد با دانش علیف نام کل انام کرد آن قوم را زان که نسبت کو به یقزه نام را روح حیوانی ندارد غیر نام. حسهای منعکس دارند قوم یغزه آمد نوم حیوانی نماند انعکاس حس خود از لوح خواند همچون حس آنکه خواب او بود ربود شد و بیدار عکسیت نمود لا جرم اصفل بود اصافلین. ترک او کن لا احب بل آفلین. در تفسیر این آیت که و اما الَّذین فی قلوبهم مرض فزادت هم رجسن و قولهو یوزلو به كثيرا و یهد به كثيرا زونکه استعداد تبدیل و نبرد بودش از پستی و آن را فوت کرد باز حیوان را چو استعداد نیست عذر او اندر بهیمی روشن است زو چو استعداد شد کان رهبر است هر غذایی که خورد مغز خر است گر بلادر او افیون شود سکته و بیعقلییش افزون شود ماند یک قسم دگر اندر جهاد نیم حیوان نیم هی حی بارشاد روز و شب در جنگ و اندر کشمکش کرده چالیش آخرش با اولش. چالیش عقل با نفس همچون تنازع مجنون با ناقه. میل مجنون سوی را میل ناقه و پس سوی کره، چنان گفت مجنون هو ناقتی خلفی و قدامی الهوا و اینی و ایاها مختلفانه. همچون مجنونند و چون ناقش یقین، می آن پیش و این واپس پس بکین. میل مجنون پیش آن لیلی روان. میل ناقه پس پی کر را دوان. یکدمر مجنون ز خود غافل بوده. ناقه گردیدی و واپس آمدی، آمده. اقل و سودا، چون که پر بودش بدن، می نبودش چاره از بی خود شدن. آنکه او باشد مراقب عقل بود. عقل را سودای لیلی در بود. لیک ناقه بس مراقب بود و چست؟ چون بدیدی او مهار خیش سست فهم کردی، زو که غافل گشت و دنگ رو سپس کردی بکره کره درنگ چون خود باز آمدی دیدی دی زجا کو سپس رفته است بس فرسنگ ها در سروزه ره بدین احوال ها ماند مجنون در تردد سال ها گفت ای ناقه چو هر دو آشقیم، ما دو زد پس همره نالایقیم. نیستد بر وفق من مهر و مهار، کرد باید از تو عضلت اختیار. این دو همره همدگر را راه زن. گمره آنجان کوفرو ناید زتن، جان ز حجر عرش اندر فاقه تن ز عشق خاربن چون ناقه جان گشاید سوی بالا بالها در زده تن در زمین چنگالها تا تو با من باشی ای مرده وطن پس ز لیلی دور ماند جان من روزگارم رفت زینگون حالها همچوتی و قوم موسا سالها خطوطین بود این ره تا به سال ماندم در ره ز شستت شست سال راه نزدیک و بماندم سخت دیر سیر گشتم زین سواری سیر سیر سرنگون خود را ز اشتر درفگند گفت سوزیدم زغم تا چند چند تنگ شد بر وی بیابان فراخ خیشتن افگند اندر سنگ لاخ آنچنان افگند خود را سخت زیر که مخلخل گشت جسم آن دلیر چونچنان افگند خود را سوی پست از قضا آن لحظه پایش هم شکست پای را بر بست گفتا گوش شوم در خم چوگانش غلطان می روم زین کند نفرین حکیم خوشدهن بر سوار کوفرو ناید زتن عشق مولا کی کم از لیلا بود گوی گشتن بهر او اولا بود گوی شو میگرد بر پهلوی صدق غلط غلطان در خم چوگان عشق کین سفر زین پس بود جذب خدا وان سفر بر ناقه باشد سیر ما این سیر است مستثنا از جنس کنفزود از اجتهاد جن و انس این جذب است نی هر جذب عام که نهادش احمد و سلام نوشتن آن غلام قصه شکایت نقصان اجری سوی پادشاه قصه کو کن برای آن غلام که سوی شه برنوشت است و پیام قصه پر جنگ پر هستی و کین میفرستد پیش شاه نازنین کال بود نامه است اندروی نگر هست لایق شاه را آنگه ببر گوشه ای رو نامه را بگشا بخان بین که حرفش هست در خورد شهان گر نباشد در خور آن را پاره کن نامه دیگر نویس و چاره کن لیک فتح نامه تن زبح مدان ورنه هرکس سر دل دیدی ایان نامه بکشادن چه دشوار است و سب کار مردان است نه تفلان کب جمله بر فهرست قانع گشته ایم. زان که در هرس و هوا آغشته ایم باشند آن فهرست دام آمرا، تا چنان دانند متن نامرا باز کن سرنامه را گردن متاب زین سخن والله اعلم به سواب. آن عنوان چو اقرار زبان متن نامه سینه را کن امتحان که موافق هست با اقرار تو تا منافقوار نبود کار تو. چون جوال بسگران می بری زن نباید کم که در وای بنگری که چه داری در جوال از تلخ و خوش گر همه ارزت کشیدن را بکش. وارنه خالی کن جوالت را ز سنگ، باز خر خود را از این بگار و ننگ. در جوال آن کن که می باید کشید، سوی سلطانان و شاهان رشید.